از سومین ربط دائمه تعالی مجمعین اللهم افراد جمعی و رحمتی جمع و رحمتی از جهس بست به مناسبت کلماتی بود که کارم اخباری ها از نیاز دفن و دفن شروع کردن این بس ما به ما چه در کتب و یا کتب که منبوطه و ما بود این ادامه که دار کن بعدن شیخ رزان الله تعالی در, در کتاب رسائل بعد بعدن روزه به بحث های رسمی بوده شد از خیلیمت کلمات مولا محمد افتاد رادی در خواهد المدنیه چون انصابانشون تنها کسی زنی هردنی کسی زنی کسی زنی میشه که این مقامه رو مورد تر و کرده و انصابان بازم اینگاه شده تبدیل و تقدیل روی اما بایدشون اولین نفت حساب میشه بلیه بحثی ها بدردشون شما و مطالبی که بدردشون متناسر بود فراسیبشان جمع شده ترس مقامه مولا محمد امین استعبادی بزوان الله تعالی. دو در چند روزه از از مجموعه مباحث ایشان تقریبا دو سه بحث و شیخ مستقرار و در که هم این هم اینجا در باقان که جیده قدر آسدن یکی هم مجد زواره کتاب بکنم بحث که به خبرگاه به توی استطاقم برم که هم سابقا تا این این بسیل که ایشون مثلا که من خب کرا را میتن با تکار کردیم شودی داریم ما ارمز کردیم که اضافه برمطالبی که از اون استراغاری بزمان الله تعالی علیه قباردن چون ها این حصولا قبل ایشان و بعد ایشان در گوزه های ما مطارب که بوتن از احکام چهار تاستی عقل گفتیم مناسبه هایی که برسی اینجا کشیده شد مجموعه اموری که اصطلاحا در اصول حالا یا اصول شیعه یا در مطلب اصول در این مسلمان ها به عنوان عقل از اون یاد کرده میشه که مجموعه محور کلام که اتضاعی کلمات استاد شد سه محور برای به اصطلاح معنای گفتن عقل درستن و بعد ها و توسعه دادیم که اصولا مردم استرابادی مرادشون از عرب مجموعه افعاظ و اصوله که خونه بوده باردشون دوازده دار دوتا اش در کلمات ما آزمان که یکی اشید شکست یکی مساله محتله این دوتا در کلمات از خواهی ما نیست و ما رو بودن ما هم بخصمون اینجا راجعه بینید که در مقابل نمی، در مقابل قرآن، در و روایات در دنیای اسلام بخشه شده مصدرت بخونه مصدرت بازدش همونوری و خیاسه که چون روایات ما تکسیر به کسفت درات برن نفیه داره علمان ما هم با این یعنی محافظت, محافظت اتباع زیاده به خیاس را چه به خیاس یه بخش نکردن خواهد بهشون محبوبان همه در برایات ما که اون به اصلاح مردوده این در بقیه به اصلاحی اون هر شد یکی شمید مسئله استحسانه ها اول مسلمون و عرض شد که این رو باید به دعوت میگن قابل قبول اولا مشکلش که کلام عبدالله مسعوده. بر محروفه پیمنبر نیست حدیث محروفه نیست به اصطلاح خودشون محروفه به اصطلاح احل سنن محروفه است و از احل و توضیحش گذشت و گفته شد که به از هم زیر بار این نرمیسند بار از احسان ای این محروفه باشه که یکی از مسادر تشریف احسان بشه که مثلا موسیقی این این کار, این کار بشه ولو در روایاتی نیست یا در روایات سلاحش هست این توضیحات شده شده شده کاره مرسله بود که از کلیم در فرامون در باب مسلحه دیده با خیاس هست از این بردی که هم مرسله توضیحات شده, شده, شده ازش نداره و نمیزونی شریعت رو باش ثابت رو کنیم. و هر سر مده اینا را قبول نکردن که کلمات فوقهای ما هم نیست اصولی ما هم نیست و کلمات فوقهای ما در این استرابادی با اونه افتاس اصول عبود دوازدام شد مساله همون و صدر اصول فوقهای مده نمید یه چیه هم چیه هم این هم در کلمات از ما نیست اما تو کلمات فوقهای است یه مادر خصوص فوقی عرض شد در موادسه گذشته ما یه چیزی به مقدمه حرام داریم که خب معلومه که مقدمه حرام بشه حرام برای مترکت بشه یه چیزی به عنوان نهانه برای داریم مقدمه حرام در فعل خود انسان لحاظ میشه یعنی یک حرام در حضر گرفته میشه یک فیل دیگری که عنوان حرام نداره اون در نظر گرفته میشه لیکن این فعل در سلسده یه ای طوری ایجاز اون حرام آقه از خودش هست این اطلاح مهاردنه حرام مهاردنه حرام مثل مهاردنه باجه مثلا فیل مثل گوشت خریدن مهاردنشان بازار رفتن این در سلسده یه ای طوری ایجاز اون بازگوشت خریدن باغه بوشه حرام هم همینطوره فرد نمیش اما آنه بر در فعلی دیگر نیست اون در زدره توری وادر میشه در ایجاد فعل شخص دیگر این استلاها هنه عوضی مثلی که انگور رو بروش به شخصی که ما به نه به شخص او, او انگور این استلاها هنه بر اسم استلاها بر اسم باشه که این حرام نیست لاجه یکی از مقدمات طولی ویجاد حرام برای دیگریه این اصطلاح همه آنه برگستی خب این بحثای آنه برگست از کنان تو بحث مقاست هم متحدث شدی مقدم که تو اصول و یه توضیر یه من از قبل هم آیان قدم ما بحث مقدم حرام رو تو اصول بردن که آنه برگست رو که افتد یا حواله دیگه این رو با همه که برداشتن اینجا اینجا اینجا اینجای نه که من اصابت سمان صد این باز باید بایده بایده این صد و مشابه شخص فیلی نزدی که ببین صد و درائه. صد و اون که خودش بینسته حرام نیست که این احتمال داره به حرام بشه زمینه توش داره این موردشون از فرد میگن که باید که به باید گرسه بشه هرچه مثلا این با مثلا اگر آزادی مفتوحات داده بشه میگن با مثلا با خب آزادی مفتوحات که بین از سهرانی مثلا این مدنه این هست که مثلا بعضی در از مثلا ازار نظام هم نظام هم دفاعی نظام هم مثلا. این جروش بش گرسه میشه به خاطر این که از احتمالات مخرب وجود داره این اطلاع صد و ذراعیه صد و عبارت از اینه صد بستن در یه انبوانه وسیعه این رو هم تو اصول رو بودن صد و ذراعیه هم تو اصول رو بردن. و اون عبارت از اینه که اموری رو که احتمالا زمینه ایست مدنه ایز زمینه ایست برای کارهای حرام و مثلا فرس ناولی نظام مثلا آنها رو جلو شیرت کنید. این هم یکی از مصادره تشریح در کلمات آم، مخصوصاً مالک. آن وقت استسلام در مالک چون طعی درباره درایت شما منصور. منصور خیلی خوب بوده. تو مانصو گفته من از ما رو روی کار عوض میکنه. یا وقتی به که که از همه فردا ما مالک همه میگن. اگر در صد ذرایع در حقیقت اینه که کارهایی که فی نفسه مباح ای باشه، ای باشه برای کارهای تولیدی، برای کارهای حرام نه اینکه مقدمه باشه و لزاره که دقت کنید ایده از علمای اهل هست اینجا گرفته ناگهی ذریعه مقدمه حرام باشه صادق اگه مقدمه حرام نباشه نقش این اینه. اصل حد یک شباهتی با اون دو بحث داره. بحث مبادله حرام بحث اعانه برای در بحسی آنه برای عزمی عزمی در مظر نگیر از این فیل به عنوانه آنه برگوست یعنی استعدال کار زیرکی که اونم رای سو استفاده رو باب تم دیگه مثلا رای سو استفاده نه یک رای سو استفاده شده نه یک هرامی استغرقت میکنی این احتمال داره که به سو استفاده بشه همینی که احتمال داره سو استفاده بشه صد در آقای طبعا اگر چینچی بیدر در اصطاق دوشه به دو اصطاق روز اتوام اهل اهل گفت این این هم همین اختلاف بین علم های اهل از این بعضی از آن شوی ها می از مسائل رو اهل سننن به خاطر مسائل مثلا حکومت فاصل زمان خودشون گفتن این طور هم همشون همه یا همشون شون هم گفتن خود همین فضل زرایی رو شدیه ها شون ابو هندیک از این تصور نشه چون در دنیای اسلام مطرح شده بنظر میاد یکی از خب این هم فلدوای بیرو متعرض شدیم تحیلات می خوام در عرض کلیه تامل نامه ان شاءالله دارن یکی از عمومی که از کلی در کلمات سرده هر و آمده اون دفعه اشاره در اشاره کردیم در اله احکام نشدنه ازونه هر روزی که امروزه خیلی تصادفا مشترک داره و اون مراجعه با مردم و شورا و مشیارات نظر شورایی که ما مثلا در خیلی از مسائل یک مجموعه مشارطی یک مجموعه مشارطی مجموعه شورایی تشریف و اگر مشورتی شده مومنین قبول کرده این بکنه حکم الله که اگر این هم ثابت بشه یکی از مسائل و حقه متعرض شده دیم آقایه هست با عنوان مشارط اولا به لحاظ مغر خارجی اونی که به پیغمبر اکرماً نسبت داده شده مسئله اذان اهل سنت اینطور معلومه که پیغمبر مثلا کرد با صحابه که ما چی بگیم مثلا قانون نابوز نصارا بیاریم طن بزنیم آشی روزانه وقت نماز آشی رو کار بکنیم بعد از مدتی که خاطرید که اذان گفتن عوامل پیغمبر هر و پیغمبرم پسند واسه همون حالا این خلاصیه در بحث مسئله در در واقع یا شما شدیداً این رد شده اصلا موضوع گیری شده که <متحدث> این اهباء الهامی با خواب و با نیروی چیزا نمیشه بلکه این به پیغamber اکرم به اصطلاح از سر جدی از طرف خدا الهام شده در واقع جوابات داره که اصولاً پیغمبر سر مبارکش در مقام ندای مهمون که عجان به انسان نازل شده از طرف این اینو قبول نمیکنند اما شبیه البته اینا به مشوره اونها عمل کردن اما اینکه این کار رو بحث هرزان به اقامه این رو به مشورت گذاشت و نتیجهگیری نایم خوابیه بهشون بود یه قسط و حرکی اما بعد از پیغمبر بررکر این مسائل مشورتی هست من کراراً از کردم امر یک مجلسی و برون رو مشورتی خودش تشکیل داده و شورایی رو که سی نفر بودن کموزهت از ما حاضریم از انسان و مسائل مهم رو در اونجا ترسیم گیری خوب خب نروه کردن همین مسئله حد شعب خرم اون گیری شد دیدی وقتی بوده و وقتی اون دامادش داماد خود رو اومد علاقه سه رو براقه داماد یعنی شعر خواهرشن شعر بودن شعر شعر دو دو دو همون برس ها گفتن شد بعد برس شد کارش کارش کارش رو من چند تا برسی کنم بعد از کمتر برزو شد تا همین وقت همونه اینکه تا اون هست عبارتی که و ناوداشتر به سکر و ازا سکر هزا و همین نظر قومم هم حد شوق خرم رو به اصطلاح همون هشتا تا قرار داد. از موارد خیلی معروف مشورتی که در تاریخ نروی شده بعد سخت اراغه چون من چند از که در قبیلهاتی که در زمان بنو شد این قبیلهات به لحاظ زمین ارزش نداشن چون خود بین عرب جادلی و بدو اصولاً زمین ارزش نداشن چون بدو اصالتی که بدوی زندگی میکنه این بالا می آب و نیم چراگاه و یا سو در حرکت و ارتباطی با زمین نداره بنابراین کسانی که زندگی بدوازی داشتن طبیعتا ارتباطشون به لحاظ اوقات هم با ماه مثل توی ها هلال و اول ماه تا هلال بعدی اینکه ما تدکیل زندگی اینطور بود تدکیل زندگی برای انسان سحراتشی با ما بود. بخلاف به جامعه هایی که مثلا کشاورزی بودن مثل ایران اینا طبیعتا ارتباطشون با خرشیده نه با ما اتفاوت هم به اینجور ها یکی از نکات مهمش مسئله زمین و مرکیت زمین هر نقدر که در اقتصاد خود زمین زمینی که مهم اقتصاد حساب میشه مهم سرمایه و سربت حساب میشه سرمایه در مقابل ثروت حساب میشه و اصولا حرکت اقتصادی که شوی زمینه در این سان بزر زمین نداره در مکه نداره، نداشت مثلا مکه بازی برزیزه بود مدینه هم دو از زمین عرض میشه و اینه پرگی بود الان اگر مشاوره بشین بیشتر این واه ها بود. سال 79 بود. نیمه کارو یک گزارشی چیزی شبیه ما های مثلا زمین های 1.1 یا دو 5 سانتی چیزی ها و جز خیبر. طرف خیبر هم بحث محدود بود بزرگ بزرگن. که باید بزرگ بزرگ اولین جایی که برای مسلمان ها فو برادر حضور بود نه ایران عراق بود که از وارد تماما در بود جنگل حضرت جنگل درساز بود جزای سواب بود سیاهی میدون از درخ درخ. این مکشه اختلاف شد که این زمین چهار بکنیم یکی دیریشون موقع این زمین رو تقسیم بکنیم مثل تلحظ یا گوهر رو تلحیم اینا تابعیم تا... تا بودن که مثل بقیه غناه از زمین رو مهمونی نمکنن کهیشون مخواهد زمین رو بگذاریم میخونبست و درامدش رو بدیم به مسلمان هایی خود عرض خراج نیه عرض خراج از اینجا خود خراج برای درامده چون زمین های درامدی زمین های درامدی زمین های بود که کسی نیمیشون اجاره به اطلاع رو بیرزن اجاره بیرزن سرد و مساعده مصببی بیردن در حقیقت همه خراج بسیدن در چارش اسلامی همین خراجی که ا سل ممبره مهندس بیشتر از همون زمان هم زمان عمر خب پلهای سنگی این لکه که می‌رسند از لکه سر این این چیزها جذبی هستند که می‌رسند. چند بود به جایی آن هم در همین دلیل ما زمین هم سال اول خیلی 16 جن می‌نند در هم رو می‌شود نیروی خشن بیشتر زمان آمریکایی‌ها تا سیوشیش می‌نند چه تاسیشی که میدهند در سال که اونده بترمان هم خوش روز بهترمان انداش میکن تا خن جزو بهترمان نیست. خب روز بهترمان ندا اما بود این شرای که مصستان اول از زمین ها گرفتن مثل زمین ارائه هاا دستثی به این میف که جا اینجا نیست و خب این کیهکو زنی چیه این آرا تو فکری تو کنال در جوابه در که کاروچه ها وقتی که بس به قناهه میشه چیزهایی که مثلا اونها در چند میگیرن فرم میدونن دین منقول و غیرمنقول منبول این فرق دین منبول و غیرمنقول منبول در بازن این آرکه از فیرنبر چیز نرم نگرسن مثلا غیر منبول نباید تخصیم بشه منبول باید تخصیم بشه خدا در سند از فیرنبر رو باید تخصیم بشه این کجا درست شد در این مجمع مشورتی که عمر پر آداده بود رعیگیری شد اکثریت با این شد که این خراجی بمونه شد امیر مهمی رو زارن صبحی رو چند نفری میگفتن زمین رو تقسیم نکنی با چند نفری مستحبتن که این زمین باید تقسیم بشه رد این شد که زمین تقسیم نشه و تحلیل شد به اراضی خراجیه البته بعدها فوقای اهل سنت این بحث دارن و با این که عمر هم قائل بوده معظاله مثل تاسی ازمه هست بعدها رو شاید میکنه این من نمیخوام فیلم وارده برسه عراضی خراجیه رو شد و برسه خوب هست وارد بگذیم چون عرض رو روز عراضی خراجیه گیرستن و به این گوزه که میلی که نمیشه فراد با اجاره بدن رو اصلا دامنه ش در زمان سفریه چون بنابراین بود که در اصلا آنها اولما اسلام تصویر شد و شیر تصویر شد و مدتی هم برگرام مسلط یه دتی این شهر زمان سفریه شروع شد که ما با عرضه اران کار میکنیم خب اگر میلکی یه هم مساجد حسینی ها و مدارس تو اران ساختی همه باطلشون وقت با تو میلک باشید هیچ کدون رسید رو الان هم شبه هست فعلا بگنم این که چیزی ندیر در این تا اینامو کلمانزو محققی این سیزا رساله کرده مرحوم محققی کرده که حقیده در بود بعد مرحومه عدیوری بعد مرحومه آقای شه سلیمان حکیفی باشان سخت در بعد مرحومه چند سال رساله خراجیه تو همون زمان نوشته این رساله های خراجیه این دو به خاطر اختلاضی <تصفح> الانشون همین شده الانشون که اون الان مردم خودشون مالک میذارن نه همی الان؟ بیارا خیار بیارا خیار بیارا خیار همین الان؟ یهو باگردن مالک نیستی تمامین تمام نه که مسلمینه و شواهد و شدید دی قطعا عراقیا زیر وار همین الان مشکل ایران ها الان بحث دوم میشه الان میخوان اینش اولش که معزه شفت گیری چون بحث میشه که غیرت عراق کجا خراجیه اخیراً سلام کنده مورد عرض شده ا... ابو عبید داره کتاب الانمالش از قدیم مطرح شده اما توی تجعل سنت ادید مثلا خوزستانو تا لرستانا میذاره شامو که به از ارض خراج حالا ما فرضشون قلبه مؤکداً که ایران هست ولو بغیض شورای خاب نکرد اون دومیشون بحث دومیشه که باز غیرت ارض عراق کجاست دیگه خراجی هر خدا عراق این مشکل ن ارمان جواهر آمده که منقول تقسیم نیست. منقول اگر آمر باشه در رکسات اینجوری قرار شده. اگر آمر باشه، آباد باشه، این جزء عزادی خارجیه قرار میشه خب من معتقدم این اینجور نیست که تاریخ کتب اسلامی تقسیم شده. این یک اصطلاحی داره در اون بحث مهم بشه. مهم این قسمت خوب دقیق بکنید و طبعا این مفضل رو هم عرض بکنم این منشه شد تدریجا در کتب فقهی ما اصلا اول که اصلا اینچه باز مبارد تا دیگر نرگم اولی که این بحث مطرح شده احسان زمین و احسان انبال دولت رو ابو یوسفه ابو یوسف قاضی معروف حارناشید زمان حارناشید این بحث مطلب شدید شونه رساله داره کتاب با حارمون انوار دولت رو اونجا تفصیل داده فکر چیه، پنیمه چیه، خراج چیه، زکات چیه و چون بیشتر بحثش رو زه... خراجیش در واقع مثلا خراجی چطور صورت تنها اولین کسی که ما میدونیم به فکر تنظیم انوار دولت اسلامی و نظم این ابی یوسفه. دقیق می‌گم بعد از اون کتاب الانوار ابو ابه بعد از این کتاب میگم حد الانوار چه میگه مثلا 30 سال بعدش انصافت بسیار کتاب نافع و مفیدی تدریجا این مجموعه ها رفت توی و از چه اهل سنت تدریجا رفت تو فهر فشیه. مثلا مثل تراسید علامه الله علامه در مبادث مقاسب یه بحثی رو در احسام عرضین گرفته این بحث اقسام عرضینی که در کتاب علامه آمده و نقدار زیادیش بحثایی حکومتیه که اصلا شیعه نبود مطرح کردن فقیه اولا عملا مثلا ارز خلاش دست شیعه نبود ارازی مواد دست شیعه نبود ارازیه لذا اگه دقت این خود دقت چون بلی از مواهز و این تقسیم شد برای زمین و زمین رو تقسیم کردن به داره که اصلا احلا همه همه همه آمر باشه مواد باشه مواد اصلی بوده خودفونه اوبیه باشه دریاها باشه خود زمین خیلی واقعا مردمان با امکانات بسیار بسیط اون زمان سه نفر رو به برستاد از حدود بسره تا بالای وقتا نزدیکایی سامن را تمام زمین ارام رو در اون زمان با عصف و شطور اندازه گیری کردن برستاد برگوزی را مراب ساخته ما وقت اینجور حساب کردن اون قسمتی که بود خونه از خارج اون قسمتی که مرتفع آب نمیرسه خونم خارج اون قسمتی که خیلی ما پرووان نبی یا مستق یا مستنگب یا هو ب. این قسم های امتاب زیاد داره و قابل که شاور نیست اینام خارج اینجوری تسییرگرد. قسمتهایی که طاحیهیت که شاورزی نداره خارج، بقیه را حساب کردن دیوان تندیده کرد. اولین کسی که دیوان تندیدین که عمر زبان این کار شد. سی و 6 این جری بر این زمین حساب شد، وارد در دیوان مالیاتی شد وسی و شد جری بق. اینو بحث یواشوا شما توفه انا شما در کتاب علامه کن در این زمان خود اونها ان شاءالله که رزون نوک گیرش مکاسه اون چی بشه شیخ انصاری آخر مکاسه محرره اصلا از این داره معلوم شه این در حقیقت از علامه وارد شیعه شد اصلش مال ها بود چون حکومت دست ها بود و حتی اخیراً برای ما که کتاب علامه اقتصاد ناز دارن چون بحث زمین رو یه بحث اقتصادی در دنیای روز یکن تقسیمات زمین آدمی تختیمای شیخ و علامه گرفته که زمینش هم دختر است و یکی از عروضی مطلان بوده، ولی شیش به زودی که باشه نه میشه آمر تغییر وش آمر فرا. خب این، البته این صرف بحث که فقایی اسلام را چه برآزی کردن، یه بحث حکومتیه، بحثی که امروز دنیای امروز زمین می‌کنه، بحث اقتصادی، بحث ملیکیت و مالک میشه یا مالک نمیشه. و 12 میلادی دو تا دو می این اصطلاح عربی که ما امروز مخیم تو اختصاص زمین های شهری و زمین های بیرون شهری و زمین های مثلا کوهستانی و اصطلاح خاص خودش دنیا خاص خودشه حالا خاص خودش اینا هم اصطلاح حکومتی که اراضی که اصلن اعلی و حالا به اراضی مختوع عموماً این تقسیم بندی یک تقسیم بندی خاصی است به لحاظ زمین این تقسیم بندی که ما داریم الان در اقتصاد میکنیم یه تقسیم بندی دیگره به هر حال من در خارج نشم برگردم و خودمون نکته بحث خود. اون نقصی چیه میان شما احکام ارضی رو با مجلس مشورتی درستی که <تصفح> <تصفح> امروزه هم در دنیای اسلام یه تقریبا در اکثر دولت‌های اسلامی چیزی به نام پارلمان یا مجلس وجود داره که حتی همون اصطلاحی که فرض می متن متن در تابع قوانین به کار برد او مقرننه که تحقیق قوا قابل شد برای اینکه درو نفوذ شاه گرفته بشه به حساب شاه حکومت نشونه فقط سلطنت بکنه سه قوه رو در نظر گرفت که اون خب همون توی قانون اساسی ایران به همین تصوری که مس مونتسیو درست کرده او مقرننه و قضاییه او مقرننه حاغنی و, و قانون گذاری رو دادن به مجلس به parleman این همون اصطلاح است که قرلن هم قبل از این حرفا در دنیای اسلام مطرح شده به عنوان که یکی از عوامل قانونگذاری باشه سؤال با تمام این که به شو باده آیا با مجلس و پارلمان و انتخاب مردم یا فرصه مثلا یا در یونان قدیم مستقی مردم رای می که کلمه دموقراسی دموکراسی یعنی حکومت مردم اگر هندش از اونجا خودشون جرم میشدن رأی میدن نمانده نداشتن در قطعه در اعدام سقرات بارن مرزم آنسن جرم کنند نظر مردم بگیشت که اعدام شد در از این که اینطور آنگوزاری مستقیم بود این مطلب که در یونان بود در میان در جزیر عرب در دنیای ایران و اون زمان که درست شاه بود سال خاص خودش داشت و طباقات معیره در دنیای عرب که به در این بخش یکی نجر نجر تقریبا این منطقه مرکزی حجاز که الان میان سال سعودی تا نزدیکه یمن رو نش میگه حجاز تقریبا موازی منطقه تقریبا دو سومی الان بگن تا دریای فرقه بالا قسمت اون سعودی میشه تهامه اسمت تا قرار که نزدیکی دریاست تمام است مابین تمام و ناحیه حجاز که شامل مکه و مدینه بشه اینجوری حساب میکنند از بود حجاز بود و تمامه تمام بیشتر منطقه به حساب سمو بود تمام مثلا یه چیزی وجود مثلا 50% 80% 40% حاشیه دریای و دریای سرخ در ذویون گلزون در اصطلاح هم دریای سرخ بگیم بشه این برق غ در نظر بگیره حاشش رو تمام میگفتن بعدش هم از شما سر تا شروع جااز بود، بعد سرتار دقیه تماما نش بود ت یه جغرافیقدبی میشون به این صورت بود الان هم مییم بوده اجازه به این تبی رو بهخوا میبر. از من میخوااستم خدمت عرض رو عرضه کنم که در میان اونها، نظام عشایر حاکم بود من دار نظام نظام عشایر به اصطلاحه امروزیان نظام نمیشه اسم یه نولا نظام و یه مقداری هم به اصطلاح همون جنبه های عشایر و اینا که بود دیگه چیز مرتبی نبود در میان اصلی مدینه که جنبه شهر نشونی داشت و شهریتش بیگله ها زیر مکه هم بهتر بود یا طایفه اونسیار خیزه از جالب هم نمیشه این روز رو بیشه نکردم اینا نظام شورایی داشتن این طایفه به نظام شد خیلیش باشه اینا نظام شورایی داشتن که اون منجرم رو سقیف قصدی سقیف هم سرشیم قرآن هم این حالتی اینها حالت رو نظر کرده و با حالت یک نوع احجاب و امروه هم شورا بیدم این امروه هم نگوی هم این امروه هم اون ای که در مدینه بودن قبل از اسلام هم بودن اینا یه نوع نظام شورایی داشتن حالا سفر کرده بودن جایی دیده بودن یعنی مسائل مهمه اشیره اگر پیش می آمد بزرگانشون می شدن یا حتی افراد عادی مشورت می شدن طبیعتا نظام شورایی باید اخذ به اکثریت باشه طبیعتا اونجا منطقی میشه. شه البته بعدها در خود یعنی بعدها یعنی در خود متن حکومت اسلامی چیزی به نام مشله داریم شاوره هم فر هم، لکن شرط بحث بس موندیم که وارد این بسشی. اون شاوره هم یه بحثی هست که اگه این سیریت از اینجا داد و وجود میکنه یا استعمال وجود نیست و اگه این نه نظا... این بحث وجود بشه، بذارین کنارش نمیخوام وارد این بس بتهسی بشه. میشه دایک مناسبت دیگه بود برادر بسش. لکن و شاوره هم حتی بعد از اون که ما بیایم آن شروع کوغاکشی بیایم ولی زن. یا لسنه کشیدین برای فتوها و شورایی کم از تو به همین آیه ها هم مثلا یا همه ها هم شورا حالا من وارد این بحث که نواد یک جایی دیگه بشه فقط من این عرض حرف کنم ما اصطلاحا شور یا مشورت داریم به یک نظام شورایی داریم این دو تا با هم اشتباه نشه ها شور یک امر روانیه یا باقید دست روانی پسی بود مفاد شعر و مشردین انسان در زندگی خودش در هر اقدام که میخواد بکنه سعی کنه نسبت موفقیت رو بالا ببره نسبت خطا رو پایین بیاده در ای اقدامی که میخواد انجام بده نسبت موفقیت بالا ببره نسبت خطا رو پایین بیاره. مثلا ما عادتاً مریض که یه مراجعه میکنم اما وقتی یه مرض مهم شد شورای که تا 5 6 تا 7 تا 8 تا وقتی مشورت شد، نتیجتا احتمال اسابه و به واقع رسیدن بیشتر میشه، احتمال خفا کمتر میشه. این امن روانی ام نیست، امن اجتماعی نیست، دقت یک نظام اجتماعی است. این یک اشتباهی که شما در مثل آیه هم فلان و لذا هم در خود و قرآن داره که ادا اعظم ته ترک. اگه نظام شروع بود، یه ادا اعظم ته به یعنی کعن ما در اینجا نظام نظام ولایی اداره جامعه دست رسول الله نبی او و لا من عرفوس نظام نظام شورایی نیست. این همین اختلافی است که الان هم در عده از کشورهای که پارلمان دارن بحث هست که آیا پارلمان به معنای نظام شورایی است یا پارلمان معنی مشورت و شوره دقیقاً بکنیم آیا پارلمان معنی نظام شورایی است همون حرفی که مثلا اساساً از قرنه هیزهان به بردید و میلادی در اروپا در, در, در رونسانس حیات اجتماعی حیاتتاری ادبیشون مسئله قوه ما قرنه نمطرح شد قامونگذاره در شاه بگیرن شاهیه قامونگذار نماشه این رو به منتخبی ملده بر اساس شورا نظام شورایی یک نظام خاص خودشه مشورد و شور مطلب دیگری مشرت به شوی ان را اوقلایی است از هم انجام میدن. نسبت حساب رو زیاد میکنن نسبت خطا رو کم بکن یه اسم شور. این شابه ممکن ا هم همینه نظام شیواری چون با از انصففتر کردن لا می اما اون امر اون شوررا اون نظام شورایی بهق بکنیم امررا هم شوررابه نکن یه نظام شورایی یعنی چی؟ یعنی فرزانه خزرج یا عثمان این سعد ابن اباده هم تنشنگ بود خاطراً ناصرالدین شاه من نامی منو امینام میکنه امین نظام شورای بوده که داشتن که در ذیل آیه ملازم یاد داشتون تفصیل قرن گذاشتند که آیه در که از این دو ساعته معروفه مدینه ببینید امرهم شورا بینهم در مجلس اول هم در شورای اول در زمان هم که ترتیز شد این آیه رو نوشتن و درستش هم همینه اگه بناسه نظام شورایی باشه، این نظام شورایی، امه هم شورا بینه هم نه شابه هم به لهم این نظام شورایی به لحاظ به اصطلاح الان لحاظ های مختلفی داره به لحاظ اصل اجتماعیش مبنی بر اساس عدم برایت مثل نظام شورایی اینه و لحاظ این بحث الان در بحث قامونهی همارا مفرحی که که مهمترین طبعه کشکالاتی که در حیفاظ داروش صحبت میشه که راجعه مثلا به ولایت فقیه و نظام شورا در جمهوری اسلامی هست همینه نظام شورایی با ولاید نظام شورایی در مقابل ولاید البته الان سنگی کنن کشورهایی که داره نظام ولایت هستن مجنس راستن چی و اینکه یه کشوریست که درسمند نقوض ازم کمونیسته هر کشوری، هر اداره جامعه که زیر نظر شام یا خبرگان، یا احزاب، یا احزاب سیاسی، یا احزاب شمایی قرار میگیره به یه صحیح تر از اینها یا حتی اون کومونیست های پیش رفته یا کارگر، تمام اینها نظام بدایی هست. شکل ها میکنه. نظام بدایی اساسشی یکیه. اساس نظام ولایتی این هست که یک طایفه یا یک خط فکری یا یک جماعه هر کی هست این اداره جامعه رو به بگیره این نظام ولایتی حالا گویید مثلا اعیان و اشرافه این اعیان و اشراف گاهی مثلا در ایران مثلا خدای زاده مثلا بچه ها خدا می‌شناسن شو به خدا یا اعیان و اشرافه یا نخبگان جامعه یا احزاب سیاسی یا احزاب اجتماعی یا طبقات معین جامعه مثل طبقه کارگر و تضاد یا خاص دینه نظام دینی است یا پیغمبره یا امام یا هر هر طرز شما تصور بکنید اون قسمتش یه اون همین تصور این است که اداد بحث اداری جامعه هم نیست بحث قانون گذاری چیکار بکنن چیکار نکنن مالیات بدن مالیات ندن همه کارهای جامعه چه چیزی بسازن نسازن چه چیزی رو قبول بکنن نکنن با چه چه شری روابط داشته باشن تمام امور جامعه رو اون شورا تشخیص میده که شبیهش هم از دارید عمر آمد با تشکیلی شورا حتی گفت مثلا اراضی که مشروع هموطنه این ملک نمیشه این برنامه تشخیص نمیشه بعد بزنید خراب بعدم آمد در کتب که ما حدیث هم داریم سید محمد هلالی دارید سازوان ارذ الخراث عالیه للمسلمين لمن هو اليوم لمن هو یاتی بمبعد تصدیق داره سید محمد هلالی تصدیق داره بیم. در اصل این یک حکومت مشریتی بوده که عمر آورده. ما هم اشاره که تو بحث یه زمان تمام شد منظور چند ده روز گذاش آیا با نظام شورایی و مشریتی این بحث نظام شورایی از قدیم مطرح بوده تو زمان ما تو که هستیم بیشتر بخش عقلی این مسئله ها بیشتر این که بحث نظام شورایی لازم است که استف... چیز عقلی هم باشه استصلاح باشه. اکثریت مردم خواستن اکثر نظر حالا گاییم میشه عقلیت میگه هایی صلاح جامعه نیست این آثار مخربی درد میگنن از که اکثریت خواستن ما باید خبول کنم اینشانا فرده به ازمالله رسال الله عالم.